با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان محترم تلویزیون رنگین کمان بخش سیزدهم مطالبم رو در مورد کسوی شروع میکنیم در بخش سیزده تا اینجا رسیدیم که تلگرافی از مرکز دستور آمد به کسوی که رو ورد داره از شوشتر بیاره تو ناصری مرکز خوزستان ولی که بلند شد پس از زحمات فراوانی که کشید خودش و همکارانش اومدن به خوزستان اومدن به ناصری در اونجورت متوجه شدن که ارتش حاضر نیست اینها رو بپذیله. خودش میگه که در اینجا متوجه شدم که نظامیان چون خودشون به سلا محکمه گذاشتن برای افرادی که شاکی هستند طبیعی سبانی که حکومت سبوت کرده خیلی حکومت منطقه حکومت خوزستان نظرم شیخ اساله. خیلی از افرادی که شکایت دارن زیاد مراجعه میکنن به محاکم کسیم میگه که اینا روزی هزار تومن درآمد داشتند، داشتن هزار تومن در اون تاریخ باید بگیم که خیلی زیاد بود و پولی که میگرفتن خب پخشون کردن میگه رهی در درستش هم آقای فضلالله سرکیب حاکم نظامی منطقه است تواب قوزستانه میگه اینن مثل فراشخانه های از مراجعین رشوه میگرفتند. کسزوی رو ما میشناسیم حاضر نیست تن به اینجور مسائل بدهد به خصوص که در اینجا یک فسادی اتفاق میفتاد کسزوی از نظر وجنانی مسئول با فاسد در گفته تمام این سیزده وقت که حضورتون سخند گفتم همیشه در این مورد مطرح کردم این یکی از به یکی از مسائلی که برای کسری مطرح بود بیشتر از هر چیز دیگر، البته خرافات در که بود مسئله مبارزه با فساد بود و در اینجا فساد اتفاق میخده به صلاح آقایان نظامیان دارن محکمه درست کردن دارن از مردم طول میگیرن چیز باشونه میکردن میکنن حاضر نیستن که دیگه عقلیه ای در این منطقه باشه کسری با همین حاکم نظامی یک ملاقاتی در این باره میکنه. در این ملاقات متوجه میشه که به شدت مخالف سرتیب وظولله همون بود تیم سال فضل الله, همون فضل الله زاهدی بعدی که ما میدونیم تاریخ خوب بشته آمد اصلی کودتای تای بیش بود هم حالا اینجا، حکومت نظامی تشکیل داده این حاضر نیست میخوره سخن کستویست با تمام به استلاح. بدون رو درواسی دارم حضورتو نظمه میکنم کستوی هم دروغ نمیگه حالا نسبی همشی ولی ما داریم از کتاب کستوی مطلب میگیم رشته میخوره نمیخوادیم من رو از دست بدیم میگه در ملاقاتی که داشتم سختی کنه این آغاز سخن کرد از کتاب کسبی میخونم چون خوزستان تازه تازفت شده الان مرکز سیاست است. ما باید اشایر ما باید با اشایر از روی سیاست رفتار کنیم ولی ادلیه چون یک اداره قانونیش منطقه باشیم، این منطق واقعا منطقه عجیب غریبیه این آدم نشون میده که چقدر مشتاق اینه که خودش باشه و جیباشو پر کنه میگه که ولی ادیتون یک یک اداره قانونی است مجبور است ملاحظه هیچ چیز نکند و قانون رو اجرا کنه ببینید به چی اراده میگیره این آقای بود به دولت پیشنهاد کردم آقا, آقا میگه آقای حاکم نظامی میگه به دولت پیشنهاد کردم که ادلیه در شوشتر باشد از سر ادامه میگه در ادامهش میگه که خندم گرفت که به دلخواه خود چه پردهی میکشد و چه رنگی میدهد توگویی بچه را فرید میدهد و بهش جواب میده سیاست همین است که در اینجا هست که رعای انگلیس و عراق فراوانند یک عدلیه باید قانونی باشد که به کارها از روی قانون و ادالت رسیدگی بکند سرطیب فضولا پیلاخره در این ملاقات برمیگرده میشه که آجا من به تهران یک پیشنهادی کردم مدتی صبر کنیم تا جواب تهران بیاد فا مسئله روشن شد کسنی ما در بخشهای گذشته گفتیم که چه مبارزاتی با شیخ حسن کرده اینک شیخ رفته جاشت نظامیان گرفته است این نظامیان این مثلا پلیس، اونا که اسلحه در دستشون است، اونا که با مردم بیسلاح و بدبخت و بیچاره در تماس هستند باید کنترل بشن من نمیگم برای در مملکت نباشه حتما باید باشه هم ارتش باشه هم پلیس ولی به محض اینکه کنترل نشان سوء استفاده میکنن همین نظامیان هم امروز در خلیج فارس در بحر خزر دارن ببخشید در به صلاح خوزستان دارن سوء استفاده میکنن کاشایی به حرفای از اصلاً توجهی نکرد اطلاعی نوشت تکثیر کردن اطلاعی را توضیح, توضیح کردم منتشر کردن در تمام ناصری اطلاع دادن که آه آمده به ناصری ما به زودی به های شما رسیدگی خواهیم کرد بر اساس خانم یکی از مسائل جالبی هم که اتفاق افتاد اینه که کنسول روز که در رو بود تازه هم ارز کردم که شعروی شده بلشویکی شده اسمشم باتمانوف بوده از این عمل و مبارزه یک خوشحال میشه برمیگرده استقبال میکنه از کسری تمام اعضای دیگر رو و همراه کسلوی یک شب به شام دعوت میکنه و این مسئله هم بیشتر مثل سیخ میره تو چشمان آقای سرتی فضل الله در همین حیس و پیس یکی دو روز نگذاشته که کسری داره این مساله رو انجام میده یعنی ادلیه را میخواد مستقر بکنه تلگرافی از تهران میرسه بدین شرط آقای رئیس ادلیه عدلیه را به شوشتر باز کردانید ببینید چه چجوری دستشون تو دست همه رزاخان هر به یک جهانی میندازه تا از یک انسان قلم به دست حمایت بکنه رزاخان یک آدم نظامی بود و تأثب شدیدی هم نسبت به نظامیانش داشت و اینم یکی از تأثباتش بود شما یک نفر آزی مطلبی رو میگه عملی رو میخواد بکنه دو نفر نظامی که اصلا خبر نداره غذاوتیه ادلیه چیه بر علیهش واسداده و تلگراف زده به مرکز مرکزم از اون آقا حمایت میکنه ولی باز ارز میکنم ما کرسوی رو میشناسیم پس از دریافت این تلگراف که باز تکرار میکنم آقای رئیس عدیگه عدیگه را بشوشتر بازگردانید کرسوی در پاسخ مینویسد عدیگه باید در مرکز ولایت باشد بازگردانیدان آن بشوشتر خلاف قانون است من مکلف به اجرای دستورات وزارتخانه نیستم کسری قاضیه قاضی وزارتخانه در قاضی نمیتونه مداخله بکنه در کارهاش گیرم که حالا رزاخان سر قدرت همه رو داره کسری داره از یک اصل و از یک قانونی. حمایت میکنم آقا کسوی تلگراف دیگری به وزیر عدلیه که اون اسمش صمیعی بوده می نویسه بیدیم که مخالفت حکومت نظامی با عدلیه مبتنی بر قرزهای شخصی است پس از کینها و های فرابان نظامیان با عدلیه و کسوی بالاخره کسوی در مقابل این همه زورگویی به قلم و بیانش رو کرد مادر در گفتیم یک نفر صاحب قلم یک نفر صاحب علم یک نفر صاحب علم و دانش به جز قلم و بیانش هیچ دیگری نداره اون هم میشترسید گرسلی همیشه از قلم و بیانش استفاده کرده سالهای بقیه عمرشم طور بوده در این راه هم جانش را از دست داده بنابراین گرسلی رو میاره به قلمش و همیداره نامه می نویسه به روزنامه حبلال متین روزنامه حبل یکی از چهار نشریه سطح مشروطیت در کلتبته هست از سالها بیستوانی داره و در تمام ایران و احراف کشور ما حتی در اراق و نجف و ارز کنم خدمتون قفخازیه اون روزی که امروز شده آذربایجان همه اینا منتشر میشه کسروی نامه می به اونجا برای دفاع از حقیقت و میفرسته به کلکته نامه انوانش اینجوریه منظورش اینجوریه میگه که گشادن خوزستان تنها آن نبوده که سپاهیان از کوههای لورستان و بختیاری گذشته به این سرزمین سرازیر کردن اینها به تنهایی سودی نتواند داشت گشادن خوزستان آن است که مردم این سرزمین را از اعراب و ایرانی به دادگری دولت و مهربانی آن امیدمند امید گردانند و دلهای آنان را به دست آورده به ایرانیگری دل بست سوسن به صلاح فرازی از نامه ایست که نوشته شده و این نامه را به نام مستعار خداداد پسل میکنه به مستعار خداداد مستعار خداداد در همین هی در همین موقع واقعی در تهران اتفاق میفته ما میدونیم که رضاخان داره هوس پادشاهی داره نهم آبان هزار و چهار مجلس شورای ملی تشکیل شد و در این مجلس از قبل آماده شده بود دستیسه شده بود تا با اکثریت رضاخان رو پادشاه بکنه که ما میدونیم در این مجلس های نفر با کمال شهامت از این عمل انتقاد کردم البته بنده مخالف پادشاهی رزاخان نیستم ولی بیطرفی ایجاب میکنه که بگم در این جا در این مرحله رضاخان زور گفت قانون رو رایت نکرد رضا خان دسیسه چید برای این که پادشاه بشه حالا صحبت اینه که بعدن چه کارها کرد کارای خوب زیادی کرد این مسئله دیگه است ولی این قسمت از تاریخ رضا رو محت... محکوم می‌کنه این مطلب به گوش کشوی رسید کشوی بلافاصله برداشت شناوی دیگه هم یعنی به باز به همین نشریه عبدالمکین نوشت و این نامه با اشاره به جنبشی که در ایران به نفع پابشاهی رزاخان پا شده بود در این مورد می که سردار سپه با رفتاری که تاکنون کرده پیداست که به مشروطه نمی گذارد و پیداست که اگر به شاهی رسد این ارج نگذاردن بیشتر خواهد شد این عرض باید اندیشه آینده را کرد یک توضیحی بدم در اینجا په این نفر بزرگان مملکت ما و مشروط مملکت ما عبارت بود از مدرس و و مصدق و یحیا دولت آبادی و حسین علا در مجلس آن روز در نهم آبان ما از این عمل انتقاد کردند، مخالفت کردند. دو روز قبل از اون هفته آبان ما هم ملک کشوروهای بهار در همون مجلس انتقاد کرد مخالفت خودش رو با پادشاهی رضاخان اعلام کرد که در اون مجلس یک روزنامه نگاری که رئیس روزنامه نصیحت غزمین بود اومده بود برای کاری در تهران و از شانس بدش روز اومده بود مجلس تماشاچی بود و از شانس بدش شبیه ملک شوهرها بود قاتلان رزاخان اونو به جای ملک تا و این هم یکی از کارهای زشتی بود که رزاخان انجام داد این دو تا نامه مثل توپی در ایران پیچید. در همه جا یه چنین کسی یه چنین نامه این نوشته هم با نظامیان در افتاده نظامیان رزاخان هم با خود رزاخان در افتاده جالبه یکی که روزی در از دیگه پیغامی از حاکم نظامی آمده و او را به حکمرانی خواست او پس از رفتن به اداره حکمرانی این, حالا این مسائل فیلن در ناصریه در مرکزه پس از رفتن به اداره حکمرانی حاکم بدون اینکه که خودشونو بپذیره ماقنش را پرستاد پیغامی داد پیغام بدین شر بود آقای سرطیب می چون نایبه حاکم میگه آقای سرتیب میفرمایند چون میدانم آقای رئیس یه آدم عصبانی است نمیخوام با ایشان روبرو شوم شما حرفهای مرا برسانید ایشان چون به اهواز آمدند من خواهش کردم ادلیه رو باز نکنند نپذیرفتند تلگراف از وزارت عدلیه فرستادند که اداره رو به شوشتر بازگردانند نپذیرفتند به این ها وصل نکردند مقال به المتین نوشتند و به من و دیگران توهین کردند در این آخری هم به حضرت اشرف تاخته و توهین کرده د از تهران اجازه دادند که در باره ایشان هر رفتار سختی بخواهم مزایقه نکنم ولی من به ایشان احترام میگذارم باید تا دو ساعت دیگر خارج شود دسیسه کسی نشسته تو مرکز با یک تلگرافی از یک سرتیبی بدون اینکه که بپرسه واقعیت چیه بدون اینکه که نمایندهی ای بپرسه اونجا بررسی کنن بگنن حقیقت کجاست برن به اون دادگاهی که تشکیل دادن به اونا بررسی کنن بدون اینکه به مسئله بررسی کنن بر میداره به همون سرتیب میگه که هر طور دلت میخواد اقدام مکن تا این آدم کوشیه این غیر خانونیه بی کسانی جواب میده کسری میگه با آقای سطیب بگویید های شما میجاست خواهش شما را نتبا آنستنی پذیرفت من ناچار بودم که ادلیه را بکشایم و اما تلگراف وزارت ادلیه آقای سرتیب چرا نمیدانند که قوه قضایی مستقل است چرا نمیدانند که یک قاضی زیر دست وزیر ادليه نیست ها. آقای کسری هم که حاکم نظامی بی سواده میرم باد گفت دستور وزارت ادليه مخالف قانون بود من نپذیرفتم و آنها نیز مرا گناهکار نشمارند ادامه می کنم بر سر آن که مرا از احواز بیرون میکنن، ببین چه کار خواهی کنن یه قاضی رو یک نظامی تبعید می کنن. ملت ما همشه اینجوری بوده کشور ما همش اینجوری بوده همشه کار اساسی در اونجا اجرامه شده آمدیم بر سر آن که مرا از احواز بیرون میکنن. خواستشان چیست؟ اگر میخوام من عقلیه را برداشته به شوشتر بازگردانم این نخواهد شد اگر میخواهند من خودم بیرون به بسیار خوب میپذیرم ولی نه به شوشتر بلکه به بسره که از آنجا به تهران تلگراف کنم و دستور خواهم داد آن هم دو ساعته نشود تا فردا بامداد داد بسیج سفر کرده و راه خواهم داد. کسی این فردای آنروز تلگرافی به, به تهران میفرسته و مرخصی بگیره. گیره چه کار میتونه بکنه؟ جلوی توپ و گلوله هست جلوی چکمه است اینا انسانیت سرشون نمیشه که اینا قاضی نمیشنستن که کی؟ و از اونجا با همراهی به همراهی سوی اراغ حرکت کرد که روز سوم فروردین 1304 از ناصری و از مدیدار قبور امام واقع در اراغ حرکت کرد این دیدار نه از دیده دی دی اعتقاد بود تقدس بود نه فقط از نظر تاریخی کسابی رو میشناسیم از نظر تاریخی میره اینجا رو ببینید در این قبور میگوید پس از دیدن سردابه امام زمان یک داستان دیگری که ماگی شرمندگی ماگدید دیدن آن سرداب و چاه بود که به نام آن که امام دوازدهم در آنجا ناپیدار شده و مردم به زیارتش می رفتند درست کردند و با صحبت می که گروهی از خدام و افرادی که در آنجا حدیث و قرآن می خونند برای زوار گرستند. چرا گرستند؟ گدایی می چرا چرای گدایی می برای اینکه رضا خان از مدتی پیش جلو زیارتو گرفته، این که از کارهای خوبه رضا خورد. جلوی زیارتو گرفته، دیگه ایرانی نمیاد اونجا. ایرانی هم که نیاد جای دیگه شیعه نیست که بیاد اونجا رو ببینه. هست ولی اصل کار در ایران. و اینا گلوسنمون موندن میگه چسبیده بودن یا قما. بیا برات بخونم از این چیزا. میگه عشوانی کردم گفتم من نمیخوام. میگه صداشو بلند کرد، دل زب که این بابیه. این هم این انجز زدن ها هم یکی از اصافه کسانی که معتقدن به این دین بلا فاصله آدم متهم متقم میکنن کردن دیدیم بازم میکنن هم یادانم میکنن جسوی 17 روز مسافرت کرد خودش استراحت کرد در کمی آرامش پیدا کرد و در روز 21 فروردین دوباره ناسیری و از آنجا به شوشتر برگشت ولی دیگه در کار عقیه مداخله نمیکنه در مدتی یک ماه که در شوشتره مطالعه کرد خب ما میدونیم که کسری به محض اینکه فرصت داره کارهای علمیشو میده زمان از دست نمیده در آنجا هم یک ماه فرصت داره مطالعه کرد به تکمیل کتاب های ناتمان پرداخت از کارهایی که انجام داد یکی کتابچهی بود در مورد زبان اسپرانتو بعدن یه اشاره دیگه هم خواهم کرد به نام حقایق ان اسپرانتو به زبان عربی و نیز در مورد کتاب های ساله خوزستان که قبلا به صلاح مختبرداری کرده کشبرداری کرده و کتاب مشاشعیان اینا رو تنظیم کرد درست کرد و در این میان دعوتنامه در همین شوشتر، از کسری به عمل میاد آبیا حاکم دعوتنامه حاکم شوشتر که اونم نظامیه یک به سلاح سر گرده دوتنامه به نبیده چه جواب میده کسری؟ کسری بلا فاصله برمیگرده میگه چون تو به قانون احترام نگذارده ای من تو را حکمران قانونی نمیشناسم و بزر اضافه میکنه. در عدلیه را بسته چون آنچه حکومت نظامی به این رفتار خشونت آمیز خود ادامه دهد در ادلیه را بسته و بیرق را پایین آورده و با عموم کارمندان از اینجا ره سفار خواهم شد خزال رفته دشمن ایران رفته جاشون ازامیان گرفته که کار خزال میکنند. باز از داشت به خاطر خودش دوابستگیش اینا به نام ایران دارن یک دستگاه ادالت را این شنیدن خار میکنند این گفتن هایی که پرچم رو پایین میآوریم و از در درد رو می بندیم سندی شد در دست این آهای حاکم به نام سلطان حبیب سلطان به گمانم این های سلطان حبیب این جواب کسیبی را به اضافه گزارش خسمانه ای که خودش در اون نوشته تفسیر کرده فرستاد به مرکز به مرکز منظورم به ناصری پیش و این آقای سرکی و در اونجا نوشت رئیس این صدلیه به قرشون بی احترامی کرده و بیرق اداره را خوابانیده ببینید چجوری انگ میزنند، اتهام میزنند یک نامه معمولی رو که در مقام دفاع از یک واقعیت نوشته شده بلا فاصله اینو سمد میکنند و آقای حاکم خوزستان، آقای سرتیب فضل الله آقایی که بعداً کودتاگر بود این نامه رو ورداشته برای اینکه حرفشو به کرسی بنشونه برای اینکه سندی ارائه بده به تهران فرستاده و نوشته رئیس عدلیه اهالی و اشایل را بر علیه خوشون تحریک میکند. در تهران سردار سپه تحت تاثیر این گزارش به وزیر عدلیه دستور داده است که تصبی را به تهران بازخانه خب ما میدونیم آقای سردار سپه وقتی میگه فلانی رو به تهران بازخوانید هدفش چیه؟ هدفش کشتاره هدفش چی تنجاز؟ هدفش زندانی کردنه اینجوری بوده؟ در طول تاریخش ما میدونیم اینجوری بوده باز تکرار میکنم کارهای مفید فراوانی انجام داده ولی نمیشه که بیطرفی رو گذاشته کنم همه کارها چون پذیر و... کار زشتی بود بهدنبال این ازاخان میده وزارت عدلیگه در تاریخ هفت اردیبهشت تلگرافی به, به شرح شر زیر به ادلیه میفرسته به کسوی آقای میزا سید احمد رئیس عدلیگه وصول تلگراه به مرکز حرکت نموده و به امور مداخله نکنید ببینید چی میگه از شانس بد کسبی در اون تاریخ ایشون در ناصری نبوده و احتمالا گشون هم نظامیان همین تلگراف بهش و در نتیجه چون جواب نداده در مرکز به انفان یا تلقی شده و تلگراف دیگری به شرح زیر فرستادن آقای سید احمد رئیس عدلیه برای شما ماموریت دیگری در نظر گرفته شده است به مرکز حرکت نمایید این تلگراف روز هجدهم همه بهش به دست کستوی میرسه و کستوی پس از دریافت این تلگراف تصمیم میگیره که همه چیزی رو در خوزستان بگذاره در اختیار این آقایون نظامیان بذاره و حرکت کنه بره تهران بخش 16 همه گفتارم رو هم در این تاریخ پایان میدهم. روز و روزگارتان خوش